پیرامون دلایل قائلان به خلود در جهنم الله سبحانی یه دستوانی که می کند ببینید تا معتظله به اینها استناد کردند یعنی آقا عدلهی ما داریم که از این ادله بر که ادله قرآنی را لنج استناد می کنن. که افراد جوافتانه در جهنم خواهند ماند خب ما باید آن چیزی که وجود دارد گفتیم که باید تکلیف مؤمنان مرتکب کبائر را با تکلیف کافران مرتکب کبائر را جدا کنیم دیگه ببینید ایشون اون آیاتی که استناد کردن آیاتی که طبیعتا در باب کافران و مشرکان و منافقان و مرتدان اومدن آیت بلا سبحانه میگه ما این چهار دست را میبریم زیل اینا رحمه را با هم میگیم کافران این ها رو یکی میکنیم وصفشون اون وضعیتی که دارن مسیرشون یکی میشود حالا تکذیب کنن نگان آیات الهی دشمنان خدا و پیامبر آسیان و متمردان امر خدا و پیامبر ظالمان و ستمگران اشقیا مجرمان قوتوران در خطا افراد بدکار قاتل مؤمن رباخاران رویگردان ها از قران و سبک اعمالان در قیامت خب این دستواندی های دیگه که ما داریم خدمت شما هر به با اونها ما کار داریم یعنی این عنوان های رو که ما بذاریم کنار با بقیه کار داریم این دوازده تا تایفه رو ما یک جورایی ببینیم آیا اینها مراد مؤمنانه حالا بگیم فاسق یا خطاکاری هستن که اینها توفیق توبه نداشتن و از دنیا رفتن و اینا جاودانه میمونن چون معتزله به اینا استناد کردن که از قضا وقتی ما میریم نگاه میکنیم خلاف ادعای اونا هست این آیات اتفاقا هیچ اشاره به اینا نداره یعنی وقتی نگاه میکنیم اتفاقا آیاتی که استناد میکنن که ما هم میگیم آقا خلود و جاودانگی هست مونتا خلود و جاودانگی برای کیه؟ برای کافران هست حالا این توضیحات روشون تک تک داده ببینید ما ایشون مقدمتن نکته رو بیان میکنن میگن آقا ما تو تحلیل این آیات آیات محل استناد باید به دو تا نکته اساسی توجه کنیم یکی اینه که ما یک زمان ارتکازات ذهنی و برداشت شخصی خودمون رو پیشفرس خودمون رو در تفسیر میگنجانیم یه زمان باید برگردیم به اصل بس بعد برگردیم به معانی در واقع حاکم در اصل نزول وحی که در واقع بر اساس اون ریش شناسی هایی که می کنیم خب طبیعت این ها متفاوته ببینید یه نکته من به شما بگم اینه که فرقه های کلامی ایجاد می شدن فرقه های کلامی خیلی موقع با به پیش فرزهای های خودشان آمدن قرآن را تفسیر کردن نه آن چیزی که به ما انزل الله بوده و هست این خطاها هست دیگه شما بینید وحابیت همین شکلی میاد قرآن را تفسیر میکنه دعایش هم اینجوری میاد تفسیر میکنه حالا آیا واقعا مراد نبی اکرم آن است مراد حق تاولا مراد جدی خداونه طبیعتا اون نیست دیگه اینم ما باید توجه کنیم یه نکته دیگه که بسیار مهم هست قاعده اغلایی که ما باید در از اصول اغلایی محاوره در واقع تبعیت کنیم توجه به سیاق آیات هست یعنی ما باید ارتباطات آیات رو ارتباطهای پیوسته و گسسته آیات را توجه کنیم یعنی شما یه زمان خود تک آیه رو لحاظ کنید، گاهی باید با توجه به آیات پیشین و پسین متوجه میشوید که اینجا یا مؤمنان فاسق مراد هست یا کافران که اتفاقاً وقتی میریم سراغ این خیلی از اشتباهاتی که اینجا در واقع معتظل مرتکب شده اند اینه که به سیاه غایات توجه نکردند. اینم از مواردی که ما با بهش بپردازیم. خب حالا ایشون این موارد آیات دوازدهگانهی که اینجا آمده است رو میشن بارد. خب طبیعتا گفتیم تکلیف کافران و مشتکان و منافقان و مرتدان دیگه معلومه دیگه. اینه خالد در عذابه. خالد در جهنم و عذاب اون هستن این که ما تکلیف مشخص است گروه های دیگه رو می‌خوایم نگاه کنیم خب یکی از موارد که بیان شده بس تکثیب کنن نگان آیات الهیه که شما در آیه آیات 35 و 36 اعراف مشاهده می‌کنید که بعد از آفرینش آدم و هوا در واقع خداوند خطاب فرزندان آدم اینگو می‌فرماید: یا بنی آدم امای اتین نکم رسولون منکم یقصون علیکم آیاتی فمن التقا و اسلح فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون این بخش ولدین کذبو به آیاتنا و استکبرو انها اولایکه اصحاب ناره هم فیها خالدون ببینید الان اینجا شما این همنشین ها رو دقت کنید کذبو به آیاتنا تکسیب کننده آیات الهی اونایی که تکسیب کننده آیات الهی هستن و اهل تکبر هستن اینها اشاره شده که کی هستن اهل آتش جهنم هستن هم فیا خالدون و پیوستم در اون در واقع باقی میمونند ببینید ایشون میگه که با توجه به اگر ما نگاه آیه سی و پنجم کنیم میفرماید اما یعطیان نکم رسول و منکم اگر پیامبرانی نزد شما اومد به سوی شما گسیل شدند. به سمت شما اومدن یقصون علیکم آیاتی آیات ما رو هم بر شما خواندن بخانند درسته؟ حالا اینجا چیه؟ فمانه تقا و اسلحه فلا خوف و ندهیم ولا هم یهزن اینجا جبه گیری میشه دو جهت ما داریم یک جناح رو داریم که در واقع تصدیق میکنن اونها را ایمان میارن در واقع خدمت شما هر شود اینها لا خوف و ندهیم ولا هم یهزنون حالا یه ده چی هستن؟ و لذین کذبوب آیاتنا ببیند تیف بعدی تفصیل شده دیگه یعنی بین گروه اول و گروه دوم خداوند فاصله و جدایی افکنده است اینجا دیگه اونایی که آیات الاره تکذیب می و گردن کشی و سرف رازی می اینها چی هستن؟ خدمت شما هر که احل آتش هستن جاودان هم در اون می مونن. پس معلومه اینجا بحثه خلودی که مطرح شده خالدی که مطرح شده در مورد تصدیق کنندگان آیات الهی نیست درباره باره یکی هستن تکذیب کننگان هستن اینا پس میشون همون کافران و مکران پیامبر. ببینید بحث کفر اینجا طبیعتا کفر نعمت مراد ما نیست که اینا خیلی همون مرتکب میشیم اینجا همون کفر در واقع به معنای مقابل ایمان میشه دیگه یعنی خدمت شما هر شود که اقرار زبانی و تصدیق قلبی و عمل جوارعی حالا به چه چیزهایی به خداوند و رسالت پیامبر و معنزل الله و در واقع ولایت و مواردی که ما داریم درسته؟ هر که اینها رو منکر شود بهش میگیم کافر اینجا انکار پیامبران مطرح شده بسه یعطین نکم رسولم منکم اینجا بسه انکار پیامبران پس فاسخه که میدیم میگیم آقا بر اساس سیاق بر اساس آیه متوجه میشویم که چیه؟ این مراد مؤمنان فاسق نیست اینجا در واقع در مورد کافران هست آبین این این یک آیه پس این مده در واقع چی میشود؟ نقض میشود دومی موردی که مطرح شده آیه 63 سوره توبه هست که میفرمایید علم یه علم و انهو من یهادد الله و رسوله". فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ظَالِكَ الْخَيْزُرَ الْعَزِيزِ اینجا بس یوحادت مطرح شده که در واقع حد دو به نهایت رسوندن پایان چیزی هستی که ادابت دشمنی رو میرسونه طبیعتا من یوحادت الله و رسول لهو خداوند در طول رسول در طول در واقع دشمنی رسول در طول دشمنی خدا ذکر شده است. در عرضش نیست درسته؟ دشمنی با خدا و رسول نکتش چی می شود؟ با و رسالت رسولان و نبوت پیامبران این شخص هم می شود کافر دیگه این آیه هم شما وقتی مشاهده می کنید در اداد آیات نفاق هست منافقان هست توی سوره توبه در واقع دست منافقان را رو, رو کرده دیگه شما جای جای سوره توبه رو مشاهده میکنید. افرادی که در واقع لحاظ قلبی و باطنی ایمان نیوردن و ریاکاران تظاهر به ایمان کردن. مهاده با خدا و رسول میکنن. که حالا ما تو آیه دوم سوره مجادله مشاهده میکنیم. لا تجد قوما یؤمنون بالله و یوم الاخر یوادون من هاد الله و رسوله. اینه که در واقع متوجه میشیم که مؤمنان ایمان در واقع شخص مؤمن هیچ موقع با دشمنان خدا و رسولش در واقع دوستی تره دوستی نمیافکند. افکند معلومه دیگه کسی که اصلا شما هر بس دشمنی اومده مشخصه دیگه اداوتی که مطرح شده مربوط به کافران و افرادی است که گردن فرازی و صفکشی کردن در مقابل پیامبران که اینجا مراد پیامبر اکرم دشمنی با پیامبر در واقع اکرم می شود خب اینم پس آیه ما می بینیم ارتباطی با مؤمنان فاسق ندارد یا آیه آیات 22 و 23 سوره جن که میفرمایند الا بلاغا من الله و رسالاته و من الله ورسوله فإنا رعو ما یعدونه فسی علمونه من اضعف و ناصرم و اقل و عددا. خدمت شما هر شود که حالا اینجا داره بیان میکنه دیگه پیامبر میگه که من مالک چیزی نیستم دیگه من پیام معمور به در واقع ابلاغ پیام حق تعالی و در واقع معمور رسالتش هستم که اون رو به دست شما برسونم و من یعصی الله و رسوله ببینید دقت کنید اسیان هر که که خدا و پیامبرش رو در واقع اسیان کند و جلوه اونها وایسد فینلهون نار جهنم خالدی نفیها ابدا برای اون در واقع چی هست؟ آتش جاودان جهنم در واقع هست که جاودان در آن خواهند موند حالا ببینید اینا گروه آسیان رو داره میگه حالا ایشون تو آیه مطرح شده که وقتی اینها در واقع رفتند عذاب وعیدهای الهی رو دیدن اون موقع فسایه اعلمون من از اف و ناصرن و اغل و عددا اینجا علم دیگه اینجا به مقام یقین میرسن که در واقع چه کسی از نظر یار و یاور ناتوانتره و از نظر تعداد در واقع کمتره که ما ببینین تعبیرم من اصل الله و رسوله این دیگه مشخصه دیگه مربوط به منکران پیامبر و تحقیر کنندگان اونها هست دیگه منکران پیامبران مطرح شده شما آیات پیشین را متو میرید نگاه میکنید نکته رو میگه برید شما آیه 24م سوره جن را هم مشاهده میکنید یعنی شما ببینید آیات 18 20م و 24 معلومه اینها با توحید در واقع مخالفت کردن و اصل و فرع دین رو هم اصول و فرع رو هم نفذیرفتن نه تکلیفش معلومه دیگه این که شما می‌بینید تو این آیه مطرح شده یعنی شما بحث استز... استهزار رو مطرح میکنه دیگه فسای علمون من از اف و ناصرن و غلوا و عددا. یعنی انگار اینها میمدن پیامبران رو پیروان پیامبران رو اینها رو ضعیف خطاب میکردن به تعبیری که شما تو سوره خود داریم که میمدن به قضرت نوح و پیروانشون میگفتن یه سری عراز در واقع عرازل اوباش و بادی و رای است و طبیعت میکنن تمسخر میکردن دیگه این یعنی هم معلومه دیگه در اداد منکران هست دیگه اینجا سیاق آیات در مورد منکران و پیامبران را تحقیر کنن نگاهن اون هست زیل آیه داره یه جور پاسخ به اون تحقیر را میده مید ظالمان و ستمگران سم مقیر للذین از و زوق و عذاب الخلده حل تج زونه الا بما کنتم تکسبون از نظر آیت الله این آیه در واقع سیاقش درباره منکران روز قیامت هست که بیان میکنه که حالا بعد از پایان مهلت هر امتی به کسانی که در واقع ستمکار بودن گفته میشه که عذاب جوافدانه را بچشید آیا جز به گناهانی که دست به دست بردید در واقع غیر اونه که شما در واقع سزا داده میشید جزا داده میشوید زوق و عذاب الخلده حل توزم نگلا با ما کنتم تک البته حالا آیت الله سبحانی خطاب را برده رو منکران قیامت حالا من آیه پیشین در واقع وقتی نگاه میکنیم آیه پنج و حالا بیشتر بحث قرآن رو اینجا مطرح میکنه یعنی خطاب را قرآن گرفته. یا آیه 48 رو بازیشون مطرح میکنه چونیشون و یقولونمت ها دلوعد و این کنتم صادقین رو میگیره که واسه قیامت هست بعد آیه خدمت شما هر شود که پنج و ما وقتی نگاه میکنیم میشود حالا هم قرآن رو گرفت هم قیامت رو گرفت حالا هر دو مورد رو قابل برداشت هست حالا ما کاری این نکته نداریم در کل وقتی شما نگاه میکنید همین ايه 52 سوره یونوس نیز ارتباطی با مؤمنان گناهکار ندارد که حالا بدون توبه از دنیا رفتند که ایشون میگه که از این بیان میتوان مفاد دعای دیگر که در آن به ستمگران وعده و در واقع وعید و بیم خلود در آتش داده شده است نیز به دست آورد که شما تو آیات 128 و 129 سوره انعام همین نکته رو مشاهده میکنید که در این آیات این گونه اومده که عوض بالله من الشیطان الرجیم و يوم يحشرهم یوم یحشورو هم جمیعن یا معشر الجن قد استکثرتون من الانس و قال اولیاهون من الانس رب استمتع بعضنا به بعضن و بلغنا اجلنا لذی لنا قال النور ومسواكم خالدين فيه الا ما و الله ان ربك حكيم که در واقع اینجا بس چی هست اینه که اون روزی که خدا در واقع آدمیان و جنیان رو یک سره در واقع گردآوری گرد میاره گرد می و روانه میکنه بهشون میگه گروه جنیان بسیاری از آدمیان رو به پیروی از خود واداشتید و به کشون دید و پیروانشون هم از آدمیان میگن که پروردگار ما و جنیان از یکدیگر بهره گرفتیم ربنا استمتع بعضا ذنوب ما در واقع با پیروی از اونها به هواها و هوسهای خودمون دست یافتیم و اونها با وسوسه های خود در واقع ما را پیرو خودشون ساختن حالا اینجا عاقبت در واقع به مرتبه که برای ما و اونها تعیین کرده بودی رسیدیم حالا خداوند میفرماید چیه؟ قال النار مصفاكم خالدین فیها الا ما شوالله. آتش جایگاه شماست که جاودانه تو خواهید بود آنچه را خدا بخواد و در ادامه اشاره می شود که و کدالک نوولی بله ظالمینه بعضم به ما کانو یک سبون اینگونه برخی ستمگران را برخی دیگر به کیفر در واقع گناهانی که فراهم آورده بودن مسلط می خب ببینید این وقتی شما تو سیاق مشاهده می کنید مشخص سیاق آیاتی که آمده است شما دقیقا مشاهده می کنید بحث امتهای پیش پیشین هست که اینها پیامبران را چکار میکنند تکذیب میکردن بله اگر مربوط به امت پیامبر هم هست ما باید افراد را بگیم که در واقع رسالتشون را تکذیب کردن یعنی شما با توجه به این آیات آیات پیش و پسین متوجه میشوید که مراد جدی حق تعالی منکران توحید و رسالت رسالت پیامبران ببیجه رسالت پیامبر اکرم هست شما هم در سوره یونوس و هم در سوره انعام همین آیاتی که مطرح شد می‌بینید که نکتده برمیگرده به کافران کافرانی که مقابله کردن و یک جورایی جلوی خط توحیدی و رسالت پیامبران ببیجه رسالت نبی اکرم ویستدن خب طبیعتای اینا کافر هستن دیگه اینا خطاب به کافران هست نه مؤمنان فاسق یا در مورد اشقیا که شما می آیات 106 و 107 سوره هود می فرماید فیها ظفیر وشهیق خالدین فیها مد دوامت السماوات و الا ما شاء ربك ان ربک فعال لما افراد نگونسار را بدبخت رو در واقعی که تو آتش هستن اینا زفیر و شهیقشون چی میشه؟ آهنالشون بلند میشه تا زمانی که خالدی فیها ها مادامت سماوات و الارز آسمان ها و زمین برقراره جوافدانه تو میمونن مگر خدا بخواد حالا ببینید اینجا بس افراد نگونسار و شقاوتمندی که مطرح شده شما وقتی مشاهده میکنین تو آیات بعدی ببینید جایه صد و که صد نهم سوره هود که میفرمد فلا تک و فییمرییت مایه عبود و هاؤولا، مایه ابودون اللا که ما عبود آبا من قبل و انا لم موفهوع هم, هم غیر من خب این کمک میکنه به ما این آات رو که مشاهده می کنید. مجموعه این آیات در حقیقت مشخصه، افرادی رو میگه فلا تک و فیمریت مه ما یعبود ها ما یعبودون الا که ما یعبود و آبا اخون. ببینید شما الان سرگزشت پیشینیان رو خدا میخواد بر پیامبر حکایت کنه. اونا چی شدن؟ در حقیقت بر اثر شرکشون حلاک شدن و اینجا میگه خداوند می فلا تک و فیمریت مه ما یعبود و ها هاولا میگه در عبادت این مردم تردید کنی و گمانبری که شاید حجتی دارند. اینا پیشترم پدرانشون تو امتهای گذشته بی هیچ حجتی غیر خدا رو میپرستیدن ببینید دقیقا اینجا مشخصه دیگه یعنی شما آیه داره مشخص میکنه و قطعا میگه ما سهم اونها رو از عذاب بیکم و کاست اونها خواهیم داد این ویژگی که داره مطرح میشه یعنی شما اینا رو میبینید که این آیات در اداد هست. در زمینه مشرکان آمده شما بس شقی را ببینید دقیقا تعبیر آیه 15 سوره لیل فنذر تو کم نارا دا ببینید شما این آیه را دقت کنید تو این لا اشقا البته آیات 14 و پانزده هستی گشته نکنم و آیه 16 هم میفرماد می فرماید و در ادامه می فرماید که وسیجنب و حل اتقا. که این در حقیقت شما این همنشین های عشقا و کذبه و تولار که مشاهده می کنید بر ما خط را روشن کرده دیگه افراد شقی در واقع ویژگی هاشون بیان شده دیگه که تیر بختان مردم که جاودانه توی آتش جهنم هستن کسانی هستن که حق رو تکثیب کردن و در واقع از اون برتافتن دیگه و تولا شما الان نقطه مقابل میشه متقین شما این آیات به ما دقیقا مشخص میکند که اینجا شقاوتمندان نباید مؤمنان فاسق باشد اینجا طبیعتا باید کافران باشد یا در خصوص مجرمان شما در خصوص مجرمان هم مشاهده میکنید این المجرمین فی عذاب جهنم خالدون لا یفتر روان هم و هم فیه مبلسون که در واقع اینها تو عذاب جهنم جاودانه هستن عذاب هم از اونها چیه قط نمیشه گسسته نمیشه اونها هم خدمات شما هر که ناامید و سرفکنده از رحمت اقتاله هستیه ببینید اینجا آیات قبل رو شما وقتی مشاهده میکنید توی سوره مبرک زخروف دقیقا راه رو مشخص کرده است که شما می‌بینید که این آیات که مطرح شده آیات 68 تا 70 که درباره شما نگاه میکنید بندگان ویژه حق تالا یا عباده لا خوف علیکم علیکم و بلا انتون تهزنون این بندگان ویژه هست که حالا اوصافشون بیان میشه حالا در صفحه مجرمان مشخص شده که اینها چی و کیا هستن خالد در جهنم هستند یعنی شما با مقایسه قرینه خدمت شما هر شود مؤمنان ال... الذین آمنو به آیاتنا با این المجرمینه متوجه می شود که مجرمان افرادی هستند که چی ایمان به آیات الهی ندارن جدا از اینها سور زخرف رم که مکی هست مشخص است که اونجا پیامبر صف بندی هاشو خدمت شما هر مواردی که بوده مو مشرکان و کافران بوده اینجا اهل کتاب مطرح نیستن دیگه افرادی بودن که به آیات الهی پشت پا زدن و اینجا مجرمان و کافر هستن دیگه که شما توی سوره سجده هم همین اتفاق رو می‌بینید آیات 12 تا 14 سوره سجده که حالا من چون آیه 14 سجده واجبه داره خودتون بخونید دیگه بس مجرمان با بس عذاب جاودان میاد و اینها به یقینم میدونن دیگه یقین به مرتبه یقین رسند وقتی عذاب به آنها میرسد وقتی که اون به عذاب می رسند و این از این تعابیر ان موغنون شما متوجه میشوید که اینها در واقع به آیات حق الله و قوانین الهی یقین و اعتقاد نداشتند دیگه اینا خدمت شما هر شبات کافر بودند که آیات شما وقتی مشاهده می‌کنید آیه 15 سوره سجده که گفتم سجده واجبه است یه دقیقا این اوصاف مؤمنان را متذکر میشه که این تقابل مجرمان با مؤمنان دقیقا راه را بر ما روشن میکند که اینجا عذاب جاودان برای کیا است برای کافران هست خب من احساس میکنم مطالب چون فایل فایل‌ها حجیم میشه و اینها اگر موافق باشیم مطالب را تا پیش از مورد فرو رفتگان در ختامات که وتمان میرسونیم ان شاء امری بود جلسه بعد از پایین صفحه 393 مطالبمون رو پی خواهیم گرفت که درباره عدلی قائلان به خلود در آتش جهنم بود که اینها رو ما دلایل معتزله رو میگیم و بر اساس سیاق یا بر اساس اون فضای حاکم بر آیه که در زمان نزول بوده اومدیم موارد را رد کردیم بازم من از همه شما عزیزان تو این ماه مبارک التماس دعا دارم ما را در لحظات این ماه ویژه در لحظات افتار و سحر از دعای خیرتون فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.